شوم قانون کارایی به اجبار رو به کار بگیرید این قانون میگه هیچ وقت برای تمام کارها وقت کافی نیست اما همیشه برای انجام مهمترین کارها وقت کافی هست هر وقت اجبار داشته باشید که یک کار مهم رو که پیامدهای قابل ملاحظه‌ای داره انجام بدید سرتون رو پایین میندازید و کار رو قبل از رسیدن به مهلتش تمام میکنید خیلی افراد نمیتونن در خودشون این انضباط رو به وجود بیارن که کار رو زودتر از موعد تموم کنن اما هیچ از تحت فشار بهتر کار نمیکنه. این فقط توجیهی برای ضعف در مدیریت زمانه. وقتی تحت فشار هستید نه تنها استرس بیشتری دارید بلکه زیادتر هم اشتباه می کنید. خیلی وقتها این اشتباه باعث دوباره کاری در زمان دیگه ای میشه. چهار سؤال عالی هستند که میتونید برای افزایش بهرهوری و دو برابر کردن کاراییتون بپرسید. یک قبل از شروع کار بپرسید با ارزش استفاده از وقت من چیه؟ از کارهایی که انجام میدید کدومشون بیشترین ارزش رو به کارتون و به زندگیتون میده؟ از کارهایی که میکنید کدومشون بیشترین بازده رو داره یا بیشترین پاداش رو برای شما و شرکتتون به بار میاره؟ با رئیستون و با افراد دور و صحبت کنید و از اونا راهنمایی بخواید. باید جواب این سوال براتون کاملا روشن باشه و تمام وقت روی این های با ارزش کار کنید. 2. مرتب از خودتون بپرسید چرا به من حقوق میدن؟ شما را دقیقاً برای انجام چه کاری استخدام کردن و از بین همه کارهایی که برای انجامشون استفاده شدید، کدوم نتایجه که بیشتر از همه موفقیت شما رو در کارتون تعیین میکنه. جواب این سوال هر چه که باشه، همون هایی که لازمه تمام روز روی اون تمرکز کنید. 3. سوال بعدی برای حداکثر بازدهی اینه. چه کاری رو شما و فقط شما میتونید انجام بدید که اگه درست انجام بشه، میتونه یک تغییر مثبت ایجاد کنه؟ در هر زمان فقط یک جواب برای این سوال وجود داره و این از کارهاییه که اگه شما انجام ندید اصلاً انجام نمیشه. ولی اگه شما انجامش بدید و درست انجامش بدید میتونه تغییر عمده ای ایجاد کنه. هرچه که هست باید بالاتر از هر چیز دیگه ای روی اون کار کنید. اینجاست که میتونید بزرگترین کمک رو بکنید. چهار. این احتمالاً بهترین سوال مدیریت زمانه. در این لحظه ارزشمندترین استفاده من از وقت چیه؟ همیشه از خودتون بپرسید در این لحظه ارزشمندترین استفاده من از وقت چیه؟ جوابتون به این سوال هرچه چه که هست حتما باید بیشتر مواقع مشغول اون باشید. تواناییتون در اینکه مرتبا این, این سوال‌ها رو بپرسید و به اونها جواب بدید شما رو در مسیر درست و بالاترین کارهای نگه می‌داره. با ارزشترین کارهای من چیه؟ چرا به من حقوق میدن؟ چه کاری رو من و فقط من میتونم انجام بدم که اگه درست انجام بشه میتونه یک تغییر مثبت ایجاد کنه و در این لحظه ارزشمندترین استفاده از وقت من چیه؟ خودتون رو مجبور کنید که فقط روی جوابهایی که به این سؤالها میدید کار کنید و همین به تنهایی کاراییتون رو دو برابر میکنه